داستان یازدهم اعتراف آن روز در صفحه اول روزنامه ها اکس سه مرد را در سه جای مختلف چاپ کرده بودند. اولین مرد، جیبری بود که از جیب یکی از مسافرهای های تراموای 150 لیره زده بود. دومین مرد مسافری بود که در آن تراموا 150 لیرش را زده بودند. سومین مرد کسی بود که پولش را نزده بودند اما، به دروغ گفته بود، جیب برها از جیب کت هم 150 لیره بردن. اکس این سه مرد را روزنامه ها در سه جای مختلف زیر سه خبر متفاوت چاپ کرده بودند. برای همین خاننده ها متوجه نشدند بین این سه مرد ارتباطی وجود دارد. ارتباط محکمی که به خاطر پول دزدی به وجود آمده بود. حادثه ای که این سه نفر را به هم پیوند می داد، یک روز عصر در تراموای شلوغ و پر از مسافر اتفاق بیایید به نوبت از اولین نفر شروع کنیم. بعد نوبت را بدهیم به آن دو نفر دیگر. آخر سر هم حادثه ای را که بین سه نفر اتفاق افتاد تعریف کنیم. اولین نفر اسمش جمال است. جمال بیک پنجه و نه سال دارد. زنش از او بیست و شش سال کوچکتر است. زنه زشت و دعوایی و بددهن است. اما جمال بیک برعکس آدم ملایم و سر راه است راهیست. بچه ندارد. زن و شوهر شب و روز دعوا می کنند. بهتر است بگوییم شوهر دعوا نمی کند. زنه به تنهایی مدام در حال دعوا کردن است. وقتی هم می شوهرش توی دعوایی به این قشنگی شرکت نمی کند و خودش را درگیر نمی کند، تاقتش تاق می شود و جمال بیک را حسابی کتک میزند. از آشناها و در همسایه کسی نمانده که نداند، جمال بیک روزی چند وعده از زنش کتک می خورد. همه دلشان به حال جمال که بیچاره میسوزد صدای ناله و گریه جمال را از سر درد میشنوند آنهایی هم که نشنیده اند از آنهایی که شنیده اند میشنوند حالا برویم سر وقت دومین مرد همان که پولش را توی تراموای زده اند حدوداً چهل سال است اسمش حقی است توی اداره پلیس توی زندان میان دوستانش حقی منگنه صدایش میکند چون وقتی تصمیم می گیرد پول کسی را از جیبش بزند، دیگر فلکانه معامله نیست. طرف هر کجا برود حقی هم دنبالش می رود و آخر سر جایی گیرش می اندازد. مثل منگنه در تنگنایش نایش میگذارد و جیبش را میزند. جیبر مشهوری است. آوازش چنان پیچیده که هر جا جیب کسی را بزنند، اولین آدمی که بهش مزنون میشوند اوست. و مرتب دستگیرش میکنند. برای همین، خیلی پیش میآید که به خاطر پولی که ندزدیده توی دردسر بیوفتند. حالا برویم سر وقت مردی که پولش را ندزدیده بودند اما فریاد می‌زد پولم را دزدیده‌اند و می‌خواست اینطوری پلیس را گول بزند. اسمش موسی است. شش سال دارد. پارسال به استانبول آمده. توی یک شرکت آبدار چیست چون پول کمی گیرش می‌آید به سختی اموراتش را می‌گذراند. تازه متأهل است. و دو تا بچه هم دارد الان یکی یکی تعریف میکنیم که هر کدام از این سه مرد چطور گذرشان به آن تراموای افتاد جمال بیک که صبح به محض بیدار شدن جیره یک کتک را رو از زنش خورده بود داشت هقه هق کنان گریه میکرد زنش به او گفت بیخودی خودی زرزر نکن پاشو برو اجاره مغازه رو بگیر بعدشم یه دونه تصمیه چرخیاتی بخر و زودی برگرد خونه تسمه چرخ خیاتی پایی پاره شده بود زنش تسمه پاره را داده بود دستش و گفته بود یک دانه عین آن را بخرد جمال بیک چند تا خانه و مغازه در جاهای مختلف استانبول داشت که از پدرش به او ارث رسیده بود با پول اجاره آنها اموراتشان میگذشت. پول اجاره ها را تا قروش آخر به زنش تحویل میداد آن روز هم زنش داشت او را برای گرفتن اجاره به یکی از مغازه ها میفرستاد جمال بیک از ترس فوری از جا پرید و داشت حاضر می شد که زنش گفت مبادا دیر بکنی وگرنه میکشمت. وقتی هم داشت از خانه بیرون می رفت، پشت سرش فریاد زد. باقی مونده ی پولو هم بیکم و کس بیار وگرنه نم استخوناتو خورد می کنم. جمال بیک که تسمه پارا و پیچیده در روزنامه دستش بود اول به مغازه رفت و 150 لیره اجاره ماهانه را گرفت. بعد دنبال تصمه چرخ خیاتی گشت که سفارش زنش بود. از کاراکوی تا توبخانه همه جا را گشت. پیدا نکرد. مغازهدارها میخندیدند و میگفتند بی خودی نگرد پیدا نمیشه. اگر پیدا نمیشد زنش استخانهایش را خورد میکرد. خیابان حریت و دوروبر میدان تقسیم را هم گشت. یکی گفت شاید تو خورد فروشی های بیک بتونی پیدا کنی رفت پیدا نکرد یه سرم به قاسم پاشا بزنین نشانی هم دادند رفت پیدا نکرد شاید تو بشکتاش رفت پیدا نکرد به کارخونه زیتون برنو هم یه سر بزنین ازر شده بود. جمال بیک چهار طرف استانبول را مثل سگ سوزن خورده گشته بود. همون چیزی رو که می جز پیدا نکرده بود. ساعت شش دیگر جایی نمی توانست برود. چون از بس پی خرید تسمه این آنور رفته و کرایه تاکسی و اتوبوس و مینی بوس داده بود، 150 و لیره پول اجاره مغازه هم ته کشیده بود. توی جیبش بیست و پنج لیره مانده بود. هر حرفی هم که بزنش زنش می زد نمی توان از یک طرف چون دیر کرده بود از زنش کتک میخورد از طرف دیگر چون نمیتوانست بابته خرج شدن 150 لیره قانش کند زنش استخانهایش را خورد میکرد. تازه چون نتوانسته بود چرخ چرخیاتی بخرد یک دگنک هم توی سرش میخورد. توی کوچه راه میرفت و با خودش میگفت حالا چه خاکی به سرم بریزم خدای خودت فرجی کن. حتی به سرش زد خودکشی کنه. آخر سر حیران و سرگردان با 25 دیره باقی مانده سوار تراموای شد تا به خانه برگردد. تراموای خیلی شلوغ بود. او هم خودش را گوشه‌ای جا کرد. درست وسط شلوغی تراموای یک دفعه فکری به سرش زد. یک دفعه داد کشید. ای وای، جیبم وزداد. این فریاد جمال یک چنان وحشتناک بود که همه را ترساند. راننده هم تراموای را نگه جمال بکه جور دیگری نمیتوانست از دست زنش نجات پیدا کند. جیببوری پولش را زده. الان نه از پول خبری هست، نه از جیببور. این جمال بکه هم خلاص می شود می رود پی کارش. حالا برویم سر وقت حقی منگنه جیببور مشهور که دومین نفر در این ماجرا است. حقی از چهار ماه پیش، که کیف یکی از بازاری ها را با چهار هزار لیره پول داخلش زده بود دست به کار دیگری نزده بود آن شب هم برای نشان دادن هنرش سوار تراموای نشده بود بلکه میخواست مثل آدم برود به کاراکوی. حقی اصولا سوار تراموای نمیشد و به خصوص وقتهایی که نمیخواست جیب کسی را بزند به چنین جاهای شلوغی وارد نمیشد اما آن شب نه تاکسی گیرش آمده بود نه بوز برای همین ناچار سوار تراموای شده بود خوشو اینکه بودنش با جمال بک توی یک تراموای تصادف محض بود وقتی جمال بک داد زده بود ای وای جی ما زدن حقی منگنن درست کنارش بود مانده بود چه کار بکند مطمئن بود همه فکر میکنند کار, کار اوست اگر فرار کند میگیرندش اگر بماند هم میگیرندش حقی منگنن با همین فکرها و برای اینکه بی خودی به خاطر جرمی که مرتکب نشده گیر نیفتد، همین که جمال داد زده بود، ای وای، جیبم ما زدن، او هم پشت سرش فریاد زده بود. آره راست میگه منم دیدم اینهاش این مرده پولشو زد. بعد هم دست مردی را که پشت سرشان ایستاده بود گرفت. الان برویم سراغ موسا ثومی نفر این موسی موسان روز درست کمی قبل از سوار شدن به تراموای پول دازدیده. اما پولی که دزدیده بود 150 و لیره نبود. 100 لیره بود. پول آدم توی تراموای هم نبود. پولی یکی از همشهری هایش بود. بگذارید توضیح بدهیم. موسا که بجوری دستش تنگ بود آن روز عصر پس از تعطیل شدن کارش پیش یکی از همشهری هایش که توی یک پاساژ نگهبان بود رفته بود تا هم ببیندش هم پول قرض بگیرد. در اتاقه که نگهبانی باز بود. اما از همشهریاش خبری نبود. کتش از میخی به دیوار آویزان بود. موسا در یک لحظه گول شیطان را خورد و دست کرد توی جیب‌های کتا آویزان از میخ. یک اسکناس سدلیری پیدا کرد و سری پول را توی جیبش چپاند و ده برو رفتی. همشهریاش که آمدن او را ندیده بود از کجا میفهمید پول را موسی داشتیده؟ همین که پایش را توی کوچه گذاشت. پرید بالای اولین تراموایی که از آنجا میگذاشت. اینطوری موسا سوار همان ترامبایی شد که جمال و حقی منگنه هم سفارش بودند. مردی که حقی منگنه دستش را گرفت و فرگاد زد، آره خودم دیدم پول و این یارو دزدید همین موسا بود. هر سه با هم یخی همدیگر را گرفتند و رفتن کنان ترید. جمال شاکی بود و میگفت گفت 150 لیرش را دزدیدند موسا مزنون به جیبباری بود و حقی منگنه هم شاهد ماجرا. کمیسر و یک مأمور پلیس به حرف آنها گوش دادند. بعد کمیسر رو کرد به معاونش و گفت: کشی که من تموم شده، دارم میرم خونه. این کارو تو تموم کن. معاون کمیسر پرسید: چه کاریو؟ کمیسر که داشت از در بیرون میرفت، با دست اشاره کرد و گفت: تو تراموای این یارو پول این یارو رو زده و این یکی هم شاهد ماجرا بوده. بعد در را پشت سرش به هم زد و رفت. معاون کمیسر یکی از باتونهایی را که پشت در به میخ آویزان بود برداشت و به جمال بیک گفت بیا اینجا ببینم میخوام ازت بازجویی کنم جمال را از پشت سر به داخل اتاقی پل داد و در راب بست چیزهایی که حقی منگنه و موسا که بیرون مانده بودند از پشت در بسته میشنیدند اینها بود مردی که زبون باز ببینم چجوری کیف یارو رو زدی؟ هی من من بعد از این صداهای کوتاه و تک هجایی مثل آی وای به خدا من آخ نه تو رو جون هر دوست داری وای به گوش رسید و بعد صدا قطع شد معاون کمیسر جلوی در اتاق ظاهر شد باتون تون رو به دست چپش داد و به کف دست راستش تف انداخت بعد به موسا گفت تو بیا موسی رفتو در بسته شد باز هم از پشت در صداهای بریده بریده و ناله های تک هجایی و گاهی هم صدای فریاد به گوش می رسید. بعد صدا قطع شد. سومین نفری که رفت توی اتاق حقی منگنه بود. بعد از تمام شدن بازجویی خبرنگارها را دعوت کرده بودند. عکاس های ها عکس جمال بیک و حقی منگنه و موسی را گرفتند. یکی از کمیسرها متن تایپ و امضا بازجویی هر سه نفر را خواند. بر اساس این اعتراف ها در تراموای 150 لیره ی حقی منگنه را زده بودند. پلیس فوریجی بر را دستگیر کرده بود. اسم بر جمال بود. به گناهش اعتراف کرده بود. اما سومین نفر یعنی موسا بنا اعترافات کتبی خودش به لحاظ ماری در مزیقه بود. در شرکت به او 150 لیره داده بودند تا به جایی ببرد. 50 لیره از این پول را خرج کرده بود و چون میدانست نمیتواند این پول را سر جایش برگرداند، داخل تراموای به دروغ فریاد زده بود پول دزدیدن. کمیسر گفت این هم دلیل. بعد صد را که از جیبهای موسا درآمده بود به خبرنگارها نشان داد. فردای آن روز عکس هر سه نفرشان در جاهای مختلف روزنامه‌ها ها شد. جماع جیب بر، حقی که پولش را زده بودند و موسا که پولش را نزده بودند. اما به دروغ گفته بود پولم زدن <تصفيق> این بود ماجرای سه نفری که توی روزنما عکسشان را در جاهای جداگانه می‌بینید و نمی‌توانید ارتباطی بینشان برقرار Thank you.